اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند اعمالشان را نابود می کند. آمنوا الصالحات آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو ربهم كفر عنهم سيئات و, و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده و همه حق است و از سوی پروردگارشان نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می و کارشان را اصلاح می کند ذالک بینن الذین کفروا اتباعوا الباطل و انن الذین آمنوا الحق من ربهم این به خاطر است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از حقی که از سوی پروردگارشان بود تبعیت نمودند این گونه خداوند برای مردم مثلهای زندگی آنان را بیان می کند. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا الْمَنُّ بَعْدُ وَإِنَّهُ فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليذل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم وحینگاهی که با کافران در میدان جنگ روبرو شدید گردنهایشان را بزنید و این کار را همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید در این هنگام اسیران را محکم ببندید سپس یا بر آنان مننت گذارید و آزادشان کنید یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید و این وضع باید همچنان ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. آری برنامه این است و اگر خدا می‌خواست خودش آنها را مجازات می‌کرد اما می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی‌برد. سيهديهيم به زودی آنان را هدایت نموده و کارشان را اصلاح می کند و یدخلهم الجنه و آنها را در بهشت جاویدانش که اصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می کند یا ایوها الذین آمنوا این تنصر الله ينصركم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ای کسانی که ایمان آورده اید اگر آیین خدا را یاری کنید شما را یاری میکند و گام هایتان را استوار میدارد والذین كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان و اعمالشان نابود باد ما انزل الله فاحبط اعمالهم این به خاطر آن است که از آنکه خداوند نازل کرده کراهت داشتند از این رو خدا اعمالشان را حبط و نابود کرده افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود خداوند آنها را هلاك کرد و برای کافران امسال این مجازاتها خواهد بود. ذلک الله مولا الذين آمنوا الكافرین لا مولا لهم این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند اما کافران مولایی ندارند إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها هالأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم خداوند کسانی را که ایمان آوردن و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی از بهشت می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می‌گیرند و همچون چهارپایان می‌خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست و من قریت هی اشد قوة من قریت کلتی اخرجت كأهلكناهم. اهلكناهم اهلکناهم فلا ناصر لهم و چه بسیار شهرهایی که از شهری که را بیرون کرد نیرومند تر بودند ما همه آنها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد، همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسشان پیروی می‌کنند؟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 كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمًا حَمِيمًا وَسُقْمًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ توصيف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است در آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که تعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب تهور که مایه لذت نوشندگان است و نهرهایی از اصل مصفاست و برای آنها در آن از همه انواع میوه ها وجود دارد و از همه بالاتر است از سوی پروردگارشان آیا اینها؟ همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده میشوند که اندرونشان را از هم متلاشی میکند و من هم من یستمیع الیک حتا حتا اذا خرجوا من اندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئیکالذین طبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواءهم گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا میدهند. اما هندامی که از نزد تو خارج میشوند، به کسانی که علم و دانش به آنان بخشیده شده از روی استهزا می گویند این مرد الان چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هوای نفسشان پیروی کرده اند زادهم و الَّذِينَ اهْتَدَوْزَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ کسانی که هدایت یافتهاند خداوند بر هدایتشان می و روح تقوا به آنان می بخشد. فهل فَهَلْ الا إِلَّا السَّاعَتَاً تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهْ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ آیا آنها کافران جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرارست؟ در حالی که همکنون نشانه های آن آمده است اما هنگامی که بیاید تذکر آنها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم پس بدان كه معبودی جز الله نیست و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان استقفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می داند و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فا اذا انزلت محکمت و ذکر فی القتال رأیت رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشی عليه من الموت فاولى لهم كفاني <تصال> ایمان آوردهاند میگویند چرا سوره ای نازل نمی شود که در آن فرمان جهاد باشد اما هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل میگردد که در آن سخنی از جنگ است منافقان بیمار دل را میبینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه میکنند پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوار است وقول معروف فا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیرا لهم ولی اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است و اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند برای آنها بهتر می باشد اگر از این دستورها روی گردان شوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید الذین الله فأصمهم و اعماء آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خیش دورشان ساخته گوشهایشان را کرد و چشمهایشان را کور کرده است. افلا ی تدبرون القرآن افلا ی تدبرون القرآن امعلا قلوب اقفالها آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند؟ یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ ان الذين ارتتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينا لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم واملا لهم که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردند شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی پرید است ذلک بانهم قالو للذین کرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند ما در بعضی از امور از شما پیروی می‌کنیم در حالی که خداوند پنهان پنهانکاری آنان را می داند اذا هم حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنان می زنند و جانشان را می گیرند. بانهم اتبعوا ما اسخط الله رضوانه فاحبط اعمالهم این به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشمی میآورد پیروی کردند و آنچه را موجب خشنودی اوست کراحت داشتند از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد امحسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا هایشان را آشکار نمی‌کند ولو نشاء اولى اريناكم فلعرفتهم بцимаهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم عمالكم و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان میدهیم تا آنان را با هایشان بشناسی هرچند میتوانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی و خداوند اعمال شما را میداند ولا نبل ما همه شما را قطعا می ازماين تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول وشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا الله وسيحبط آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان باز به مخالفت با رسول خدا برخواستند هرگز زیانی به خدا نمیرسانند. و خداوند به زودی اعمالشان را نابود میکند. یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا الله و الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را باطل نسازید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید فلا تهينوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولن يتركم اعمالكم پس هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح ذلت بار دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را کم نمیکند انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید پاداش های شما را میدهد و اموال شما را نمیطلبد اين يسالكمها فيحفكم تبخل ويخرج اضغانكم چراكي هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید بخل می‌ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می‌سازد ها انتم ها اولائي تدعون وداعون ليتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمْ بَلَا يَكُونُوْ أَمْثَالَكُمْ شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت میشوید. بعضی از شما بخل میورزند و هر کس بخل ورزد نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید و هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را جای شما می آبرد. پس آنها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق میکنند